کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران جلد ششم نویسندگان علی اشرف درویشیان و رضا خندان ماهابادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افسانهای ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی و گوینده ناهید شافق سلام بر همه شما مخاطبان کانال هزار افسان، جایی که قصه های کهن و افسانه های پر رمز و راز جن میگیرد. امروز داستان زن عاقل رو براتون روایت می کنیم. داستانی زیبا و جذاب. پس تا انتهای داستان با ما باشید و لذت ببرید. افسانه زن عاقل در ضمن فکاهی بودن پیام اخلاقی خیلی خوبی داره. در روایت های دیگه این افسانه به جای کت خدا قاضی قرار داره و به جای چوپان تاجر گفته شده. اما ترفندی که به قاضی یا کت خدا زده میشه از سوی فردی داناست که در این قصه زن است و انتقام مرد چوپان رو میگیره. یکی بود و یکی نبود. در روزگاران قدیم چوپانی زندگی می کرد که شش ماه در خونه بود و شش ماه در صحرا. روزی وقتی چوپانی می خواست به صحرا بره پولهاش رو به امانت به کت خدای ده سپرد و رفت. چوپان بعد از شش ماه از صحرا برگشت و مستقیم به خونه کتخدا خدا رفت و گفت اومدم که پولم رو بگیرم. کت خدا با بی تفاوتی گفت من که تو رو نمی پول هم از کسی به امانت نگرفتم. چوپان هرچه اصرار کرد که پولش رو بگیره فایدهی نداشت. کت خدا فقط می گفت تو رو نمی که هیچ پول کسی رو هم به امانت نگرفتم. چوپان با ناراحتی ماجره رو برای زن همسایه تعریف کرد. زن فکری کرد و گفت: اصلا ناراحت نباش. من نقشه ای می میکشم و پولت رو از دست اون بیرون میارم چوپان گفت تو چه بگی انجام میدم تا به پولم برسم. زن نقشه کشید و به چوپان گفت فردا بعد از اینکه من به خونه کت خدا رفتم تو هم بیا. فردای اون رو زن مبلغی پول برداشت و به خونه یه کت خدا رفت و گفت شوهر من سه ساله که به شهر رفته و هنوز بر نگشته. میخوام به دنبال شوهرم برم. اومدم پیش تو پولهام رو به امانت بذارم. پول رو نمیتونم ده به دست پسر جوونم بسپارم. چون شما آدم امانت داری هستین میخوام پول رو نزد شما بذارم. کت از خوشحالی بادی به گلو و انداخت و گفت راست میگی دخترم به بچه ها میشه اعتماد کرد. پولت رو هم به من بده و هر جا که خواستی با خیار راحت برو. زن شروع به شمردن پولهاش کرد و در همین زمان چوپان وارد شد و گفت کت خدا اومدم امانتیم رو بگیرم. کت خدا که به پولهای زن چشم تمع دوخته بود برای اینکه اعتماد زن رو به خودش جلب کنه رو به چوپان کرد و گفت خوب کاری کردی اومدی کمی صبر کن بعدم بلند شد و در صندوق رو باز کرد و پولهای جوان رو شمرد و داد زن هنوز شمردن پولاش رو تموم نکرده بود که پسرش وارد شد و گفت مجده مادر مجده پدرم برگشته بلند شو بریم زن پولهاش رو در بخچه پیشید و گفت کت خدا ببخشید پس لازم نیست دیگه به شما زحمت بدم زن چوپان و پسر زن قشقش خندیدند و کت خدا وقتی دید که اونها همگی دارن میخندن اونم شروع به خندیدن کرد زن گفت من میخندم چون شوهرم برگشته پسرم میخنده چون پدرش اومده. چوپان میخنده چون به پولش رسیده. تو داری به چی میخندی کت خدا؟ کت خدا همونطور که میخندید گفت منم به کلاهی میخندیدم که شما بر سرم گذاشتی ممنون هستم که تا انتهای داستان همراهمون بودید. در پناه عشق و نور الهی باشید. کانال تلگرامی افسان داستان های صوتی <متصفح> نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی ام ای نشانی وبلاگ ما m e h مهران com